مصنوی معنوی مولوی برنامه سی و سوام حسد کردن هشم بر غلام خاص پادشاه بنده ای را از کرم برگزیده بود بر جمله حشم. جامگی او وظیفه چل امیر ده یکی قدرش ندیدی صد وزیر از کمال طالب و اقبال و بخت او عیاز بود و شه محمود وقت روح او با روح شه در اصل خیش پیش از این تن بوده هم پیوند و خیش کار آن دارد که پیش از تن بوده است بگذر از اینها که نو حادث شده است کار آرف راست کو نه احول است چشم او برکشت های اول است آنچه گندم کاشتندش وانچه جاو چشم او آنجاست روز و شب گراو آنچ آبست است شب جز آن نزاد حیله ها و باد است باد کی کند دل خوش به های گش آن که بیند حق بر سرش او درون دام دام می نهد جان تو نه این جهت نه آن جهد گر بروید ور بریزد صدگیه آقبت بر روید آن کشته اله کشت نو کارید بر کشت نخواست. این دوم فانیست و آن اول درست تخم اول کامل و بگزیده است تخم ثانی فاسد و پوسیده است افغانین تدبیر خود را پیش دوست گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست کار آن دارد که حق افراشته است آخران رویت که اول کاشت است هرچی کاری از برای او بکار چون اسیر دوستی ای دوست دار گرد نفس دوزد و کار او مپیچ هرچه آن نه کار حق هیچ است هیچ پیش از آن که روز دین پیدا شود نزد مالک دزد شب رسوا شود رخت دزدیده به تدبیر و فنش مانده روز داوری برگردنش صد هزاران عقل با هم برجهند تا به غیر دام او دام نهند دام خود را سخت یابند و بس کی نماید قوت بابات خص گرتقویی فایده هستی چه بود در سوالت فایده هست ای انود گر ندارد این سوالت فایده چشنویم این را عبس بی عائده بر سؤالت را بس فایده هاست پس جهان بی فایده آخر چراست؟ و جهان از یک جهت بی فایده است از جهتهای دگر پر است فایده تو گرمرا را فایده نیست مر را چون فایده است از ویمه است حسن یوسف عالم را فایده گرچه بر اخوان عبس بود زایده لحن داوودی چنان محبوب بود لیک بر محروم بانگ چوب بود آب نیل از آب حیوان بود فزون لیک بر محروم و منکر بود خون هست بر مؤمن شهیدی زندگی بر منافق مردن است و جندگی چیز در عالم بگو یک نعمت، که محرومند از وی امته گاو خر را فایده چه در شکر هست هر جان را یکی قوت دگر لیک گر آن قوت بر آریزی است پس نصیحت کردن او را رایزیست. است چون کسی کو از مرض گل دوست گرچه پندارد که آن خود قوت اوست قوت اصلی را فراموش کرده است روی در قوت مرض آورده است نوش را بگذاشته سم خورده است قوت علت همچو چوبش کرده است قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرورا را ناسزاست لیک از علت در این افتاد دل که خورد او روز و شب زین آب و گل روی زرد و پای سست و دل سباک کو غذای و سما زات الهابوک. آن غذای خاسگان دولت است خوردن آن بی گلو و آلت است شد غذای آفتاب از نور عرش مرحسود و دیو را از دود فرش در شهیدان یرزقون فرمود حق آن غذا را نه دهان بود نه تبق دل زهریار غزای می خورد. دل زهر علم صفای می برد. صورت هر آدمی چون کاسه است. چشم از معنی او حساسه است. از لقای هر کسی چیز خوری. و قران هر قرین چیزه بری. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، و قران سنگ و آهن شد شرر. و قران خاک با بارانها، میوهها ها و سبزه و ریحان ها. وزقران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. وسقران خرمی با جان ما، می بذاید خوبی و احسان ما، قابل خوردن شود اجسام ما، چون برایت از دفر کام ما سرخ روی از قران خون بود خون ز خورشید خوش گلگون بود بهترین رنگ ها سرخی بود وان ز خورشید است و از وی میرسد. هر زمین کانقرین شد باز و حل، شوره گشت و کشت را نبود محل قوتا در فعل آید زتفاق، چون قران دیو با اهل نفاق این معانی راست از چرخ نهم، بی هم تاق و ترم، تاق و ترم خلق را تاق و آریت است امر را تاق و ماهیت است از پی تاق و خاری کشند بر امید عز در خاری خوشند بر امید عز ده روزه خدوک گردن خود کردند از غم چدوک چون نمی آیند اینجا که منم کندرین از آفتاب روشنم مشرق خورشید برج قیرگون آفتاب ما ز مشرقها برون مشرق او نسبت ذرات او نا برامت فرو شد ذات او ما که واپسماند ذرات وییم، در دو عالم آفتاب بیفیم بازگرد شمس میگردم عجب همزفر شمس باشد این سبب شمس باشد بر سبب ها مطلع هم از او حبل سبب ها منقطع. ست هزاران بار ببریدم امید. از که از شمس این شما باور کنید. تو مرا باور مکن که از آفتاب. صبر دارم من و یا ماهیز آب. ورشوام نومید نومیدی من، این نسون ای آفتاب است ای حسن این نسون از نفس سانی چون برد هیچ هست از غیر هستی چون چرد جمله هستی ها از این روزه چرند گر براق و تازیان بر خود خرند وان که گردش ها از آن دریا ندید هردمارد رو به صحرای جدید او ز بهر اسب آب شور خورد تا که آب شور او را کور کرد بحر میگوید گوید به دست راست خور زاب من ای کور تا یابی بسر هست دست راست اینجا زن راست کو بداند نیک و بد را کس کجاست. نیزه است ای نیزه که تو راست میگردی گهه گاه دوتو. ما ز عشق شمس دین بینا خونیم ورنه آن کور را بینا کنیم. هان حق حسام الدین تو زود، داروش کن کوری چشم حسود توتیای کبریای تیز فعل. داروی ظلمت کش استیز آنکه گر بر چشم اعما برزند ظلمت صد ساله را زو بر کند کوران را دوا کن جز حسود کس حسودی بر تو می آرد جهود. مر حسودت را اگرچه آن منم جان تا همچینین جان میکنم. آنکه او باشد حسود آفتاب بانکه که می رنجد زبود آفتاب اینت درد بیدوا کوراست آه اینت افتاده عبد در قر چاه نف خورشید ازل باییست او که برایت این مراد او بگو گرفتار شدن باز میان جغدان به با ویرانه بازان باشد که باز آید به شاه باز کور استان که شد گم کرده راه راه را گم کردو. و. در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد او همان نور است از نور رضا لیک کورش کرد سرهنگ قضا خاک در چشمش زد و از راه برد در میان جغد و ویرانش سپارد بر سری جغدانش بر سر می زنند. پر و بال نازنینش می کنند ولوله افتاد در جغدان که ها باز آمد تا بگیرد جای ما چون سگان کوی پرخشم و مهیب اندر افتادند در دلق غریب باز گوید من چه در خوردم بجاقت صد چونین و ایران فدا کردم بجاقت من نخواهم بود اینجا جا سوی شاهنشاه راجع می شوم خشتن مکشید ای جغدان که من نیمقیمم می روم سوی وطن این خراب آباد در چشم شماست ورنه ما را ساعد شه نازجاست جغد گفتا باز هیلت می کند تازه خان و شما را برکند خانه‌های ما بگیرد او به مکر برکند ما را به سالوسی ز وکر می نماید سیری این هیلت پرست و الله از جمله حریسان بدتر است او خورد از هرس تین را همچو دبس دنبه مست بارید ای یاران بخیرس. لاف از شه میزند و از دست شاه تا برد او ما سلیمان را زراح خود چه جنس شاه باشد مرغکه مشنوشگر عقلداری اندکه جنس شاه است و, و یا جنس وزیر هیچ باشد لایق لوزین سیر آنچه میگوید زمک رو و فن هست سلطان با هشم جویای من ایند مالی خولیای ناپذیر، ایند لاف خام و دام گلگیر. هرکی این باور کند از است مرغک لاغر چدر خورد است کمترین جغد هر زنت بر مغز او مرورا یاری گری از شاه کو گفت بازر یک پر من بشکند بیخ جغدستان شهنشه برکند جغد چه خود اگر باز مرا دل برنجاند کند با من جفا شه کند توده به هر شیب و فراز صد هزاران خرمن از سرهای باز پاسبان من انایات وی است هر کجا که من روم شه در پی است در دل سلطان خیال من مقیم بی خیال من دل سلطان سقیم چون بپراند مرا شه در روش می پرم بر اوج دل چون پرتوش همچو ماه و آفتابی می پرم پرده های آسمان ها می درم. روشنی عقل ها از فکرتم، انفتار آسمان از فطرتم، بازم و حیران شود در من هما، جغد که بود تا بداند سر ما، شه برای من ز زندان یاد کرد، صد هزاران بسترا آزاد کرد، یک دمم با جغدها دمساز کرد، از دم من جغدها را باز کرد. ای خنک جغدی که در پرواز من فهم کرد از نیک بختی راز من. در من آویزید تا نازان شوید، گرچه جغدانید شهبازان شوید. آن که باشد با چنان شاه حبیب هر کجا افتد چرا باشد غریب هر که باشد شاه دردش را دوا گرچون نی نالد نباشد بینوا مالک ملکم نیم من تبل خار تبل بازم میزند شه از کنار تبل باز من ندای ارجعی حق گواه من بر رغم مدعی من نییم جنس شهنشه دور از او لیک دارم در تجلی نور از او نیست جنسیت زروی شکل و ذات آب جنس خاک آمد در نباد باد جنس آتش آمد در قوام طبع را جنس آمد است آخر، مدام جنس ما چون نیست جنس شاه ما مای ما شد بهر مای او فنا چون فنا شد مای ما او ماند فرد پیش پای اسب او گردم چو گرد خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او، خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان، تا که نفریب شما را شکل من، نقل من نوشید پیش از نقل من، ای بسا کس را که صورت راه زد قصد صورت کرد و بر الله زد آخرین جان با بدن پیوسته است هیچین این جان با بدن مانند هست تا به نور چشم با پی هست جافت نور دل در قطره خون نه شادیان در گرده و غم در جگر عقل چون شمع درون مغز سر این تعلق تعلقها نبی کیفست و چون عقل ها در دانش چونی زبون جان کل با جان جوز آسیب کرد جان از او در سطد در جیب کرد همچو مریم جان از آن آسیب جیب، حامله شد از مسیح دلفریب. آن مسیح نه که برخشک و است، آن مسیح که از مساحت برتر است. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جان شود حامل جهان، پس جهان زاید جهان دیگری این حشر را وانماید آید محشره تا قیامت کر بگویم بشمارم من ز شرح این قیامت قاصرم این سخنها خود به معنی یارب است حرف ها دام دم شیرین لب است چون کند تقصیر پس چون تنزند چون که لبیکش به یارب میرسد هست لبای که, که نتوانی شنید لیک سر تا پای بتوانی چشید کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب بر لب جو بود دیوار بلند بر سر دیوار تشنه دردمند مانعش از آب آن دیوار بود از پای آب و چماهی زار بود ناگهان انداخت او خشته در آب بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب چون خطاب یار شیرین لذیز مست کرد آن بانگ آبش چون نبیز از صفای بانگ آب آن ممتحن گشت خشتنداز آنجا خشت کن آب میزد زد بانگ یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشته مرا تشنه گفت آبا مرا دو فایده است من از این صنعت ندارم هیچ دست فایده اول سماه بانگ آب کو بوود مرتشنگان را چون رباب بانگ او چون بانگ اسرافیل شد مرده را این زندگی تحویل شد یا چو بانگ رعد ایام بهار باغ می یابد از او چندین نگار یا چو بر درویش ایام زکات یا چو بر محبوس پیغام نجات چون دم رحمان بود کن از یمن میرسد سوی محمد بیدهن یا چوبوی احمد مرسل بود کن به آسی در شفاعت میرسد یا چوبوی یوسف خوب لطیف میزند بر جان یعقوب نحیف فایده دیگر که هر خشت کزین برکنم آیم سوی ماه ای معین ما کس خشت دیوار بلند، پاستر گردد به هر دفعه که کند. پستی دیوار قربه می شود، فصل او درمان وصله می بود. سجده آمد کندن خشته لذب، موجب قربه که وست جد وقت رب. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این صرف رود آوردن است سجده کرد بر آب حیات تا نیابم زینتن خاکی نجات بر سر دیوار هر کو تشنه‌تر زود تر بر میکند خشت و مدر. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب او کلوخ ضعف تر کند از حجاب او زبانگ آب پرمی تا اونق نشنود بیگانه جزبانگ بلق ای خنک آن را که او ایام پیش مختنم دارد گذارد با اندر آن ایام کش قدرت بود صحت و زور دل و قوت بود بان جوانی باغ سبز و تر میرساند رساند بی دریغ بار و بر، چشمه های قوت و شهوت روان، سبز میگردد زمین تن بدان. خانه معمور و سقفش بس بلند، معتدل ارکان و بی تخلیت و بند. پیش ازان کیام پیری در رسد، گردنت بندد، به حبل مسد. خاک شوره گردد و ریزان و سوست هرگز از شوره نبات خوش نروست آب زور و آب شهوت منقطه او زخیش و دیگران نامنتفه ابروان چون پال دم زیر آمده چشم را نم آمده تاری شده از تشنج رو چو پشت سوسمار رفته نطق و طعم و ز کار روز بیگه لاشه لنگ و ره دراز کارگه ویران عمل رفته از ساز بیخهای خوی بد محکم شده قوت برکندن آن کم شده